میدانی چرا من ایران را برای تحصیل انتخاب کردم؟ شاید به ادبیات فارسی خیلی علاقه داری. بله، البته. اما دلیل دیگری هم دارد. چون دانشگاههای ایران از نظر علمی در سطح خوبی هستند. درست میگویی. تحصیل کرده های ایرانی در مراکز مهم علمی و تحقیقاتی دنیا کار می‌کنند. کار پزشکان ایرانی هم بسیار خوب است. من می‌بینم که از کشورهای اطراف برای مداوا به ایران می‌آیند. این پزشکان در دانشگاه‌های بزرگ ایران تحصیل کردهاند. همه دانشگاه‌های ایران دولتی هستند؟ نه. مثلا دانشگاه آزاد اسلامی غیر دولتی است این دانشگاه بزرگترین دانشگاه خاورمیانه است دانشگاه مکاتبه ای هم در ایران وجود دارد؟ بله البته دانشگاه پیام نور یک دانشگاه مکاتبه است. دانشجویان می توانند شنبه و جمعه در کلاس این دانشگاه شرکت کنند عالی است؟ پس کارمندان هم میتوانند به تحصیلات خود ادامه دهند.